سوره تحریم هم سوره مدنی هست و هم از آخرین سوره هایی هست که برآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازل شد تقریباً 107 و سوره هست در این سوره هم زمنین که بعضی از احکام و امور انتظامی که مربوط به خود رسول الله بود اینجا بیان میشه اما در جهاد و انفاق که در سوره‌ای گذشته بود هم مطالب اینجا ذکر میشه و میاد اما قبل از اینکه ما ترجمه بکنیم آیات این سوره را شان نزول این آیات را خدمت شما عرض کنم چون که فهم این آیات بستگی در به شان نزول اون اینه که آن حضرت صلی الله علیه و سلم گاهی پیش همسران خودش، از واج متحررات سر میزد، پیش اونها میرفت. بیشتر بعد نماز عصر. نوبت که هر جا بود شب اونجا بود، اما بعد نماز عصر پیش همه سر میزد، سرکشی کیش میکرد و خبری اونها رو میگرفت، احوالپرسی می کرد از احوالشون مطلع میشد. هر خانه میرفت رفت پیش ازواج متحرات مقدار کمی مکس می کرد کمی اونجا می خانه دوم میرفت سوم سیوم می اما چند روزی بود که خانه زینب که میرفت رفت زینب بنت جحش رضی الله عنها اونجا زینب برای رسول الله اصلی آمده کرده بود رسول الله اصل همون خیلی دوشت داشت. و شربتی درست میکرد برایش با اصل با آب قاطی می کرد و ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میل می لذا مقدار بیشتر طول میکشید این برای بعضی از همسران قابل تحمل نبود که چرا اونجا زیاد میمانه و میتونید که زینب داره خدمت میکنه لذا اینها با هم گفتن که ما برنامه بریزیم که من بعد آن حضرت صلی الله علیہ وسلم از این اصل نخوره با هم دیگه مشوره کردن مشوره شون یکی شد این که آن حضرت وقتی پیش شما آمد بگین که یه بوی خاصی از دهان شما و از میده شما میاد که این بوی بوی مغافیر است. مغافیر میگویند یک شیره بود که بوی مناسبی نداشت. این مغافیر یک درختی هست در اون بلاد عرب به نام عرفوت. شیره همون درخت عرفوت را میگم مغافیر. که بوی مناسب اینه گفتن که بگیم که چن... یا رسولا شما مغافیر خوردید شبیه پیاز بفرض کنید که چنین بوی میاد تا آن حضرت بگه که نه من اصل خوردم بعد بگیم حتما همین زنبور اصل رفته چون زنبور اصل هرچی بخورد او اصلش در اصل میماند حتما این زنبور اصل رفته روی همون شیرش و از شیرهش خورده که اصل که شما خورده این بو داره تا این به بعد از این اصل نخورد چون آن حضرت صلی الله و وسلم نسبت به بوها خیلی حساس بود. همیشه عطر استفاده می کرد. و هر لحظه نه اینکه روزی پنج بار هر لحظه دهان مبارک و دندنهای مبارک را مسواق میزد. میخابید مسواک می میزد بلند میشد مسواک می میزد قبل از غذا مسواک می میزد بعد از غذا مسواک می میزد به وقت نماز به وقت وضوط تهارت از خانه بیرون میشد خانه خارج می داخل میشد در همه وقت میسواق میزد شاید روزی بیست بار و خیلی حساس بود لذا وقتی این رو بگیم پیغمبر دیگه اصل نمیخورند. این دو نفر کی بودن بیشتر روایت است که ام المومنین عایشه رضی الله عنها و ام المومنین حفصه رضی الله عنها بود در بعضی روایت ها اسم سوده هم آمده اسم همسران دیگه هم آمده اون روایت ها روایت های ضعیفی ها هستند بیشتر همین دو نفر بودند لذا وقتی که پیش حفصه آمد و گفت یا رسول الله شما بوی خاصی از دهان شما میاد او گفت که من چیزی نخوردم اصل خوردم گفت پس اصل حتما این زنبورش مغافیر و اون شیره مغافیر را خورده که بین صورت بومی ده اونجا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیاد چی نکردند احساس نکردند و بعد از اینکه که پیش آیشه رفت یا اول آیشه بود دومی چونکه بحث زیاد اینجا هست که کدوم دون همسر بودند اول کدوم بود اونجا هم همین چیز بهشون گفته شد وقتی که گفته شد رسول الله باور کرد، یقین کرد، این سوره هم جز آخرین سوره هستی که از دلایل که پیغمبر غیب نمیدانست هم همینه که در آخر عمر پیغمبر هم غیب نمیدانست پشت پرده چه مشورهایی شده رسول الله خبر ندارد لذا پیغمبر اونجا به عایشه گفت که بر اساس بعضی روایته دومی هست گفت که من از این به بعد اصل نمی خورم ولی به کسی نگو این را چرا به کسی نگو به خاطر اینکه گفتی وقتی این خبر به زینب نرسد زینب با یک اخلاصی این اصل را آمده میکرد به زینب برسد زینب نرنجد به این خاطر گفت به کسی نگو او خوشحال شد که این نقشه جواب داد به حفظه گفت که نقشه جواب داد دیگه عهد کرده یا سوگند خورده که از این به بعد اصل نخورد الله عزوجل این آیات را نازل فرمودند این آیات را که نازل فرمودند رسول الله صلی الله علیه سلم متوجه شدند که این برنامه بوده این توتعی بوده نقشه بوده لذا خداوند دستور داد که شما اجازه نداری چرا حرام میکنید حلال خدا را لذا شما باید که قسمت را بشکنی و قسم را نادیده بگیری بری بخوری و بعد از اون کفاره بعضی میگن که کفاره بر پیغمبر خدا صلی اللہ نیست و نبود لذا می میفرماید یا ایوها نبی ای نبی ای نبی من لما تحرم ما احل الله لك چرا حرام قرار می دهی آنچه که خدا حلال قرار داده برای تو تبتغی مرضات ازواجک آیا می تلبی رضای همسرانت را ببینید من اینجا یک مسئله می از کنم که این مسئله خیلی مهم هست مسئله اعتقادی هست و مسئله ایمانی هست اون مسئله اینه که ما معتقدیم رسول الله صلی الله علیه و سلم در دستورات خدا یا در امور که الله عز و جل اون امور رفع می فرماید اون امور چه تکوینی باشند چه تشریعی باشند الان توضیح دادم تکوینی یعنی چه مثلا امور تکوینی اینه که مریضی را بخواد شفا بده بی, بی اولادی را بخواد اولاد بده این امور تکوینی هست ناداری را بخواد دارا بکنه و امور تشریعینه که حلالی را حرام بکنه حرامی را حلال بکنه پیغمبر هیچ نوع اختیاراتی ندارد هیچ نوع ولایتی ندارد, ندارد ندر امور تکوینی ندر امور تشریعی حتی پیغمبر اجازه ندارد چیزی را بر خود حرام بکند تا که حرام میکنه خدا میگه این حلال من را را حرام کردی اجازه نداری حق نداری باید برگردی باید رجوع کنی باید قسمت را بشکنی پس وقتی که پیغمبر مختار نیست پیغمبر دارای این ولایت مطلق نیست که اختیار مطلق داشته باشد هیچ کسی دیگه هم نمیتونه این اختیار را داشته باشد که امور الهی را بتونه جا به بکنه چه تکوینیش را چه تشریعیش را متوجه شدید الان بعضی از کشورها قوانینی دارند که این قوانین برخلاف شریعت است برخلاف دستور خداست. این قوانین برای مسلمانان اون کشور هم قابل عمل نیستند الان جاهایی که خطر جان هست و انسان اقدام نمی چیزی دیگه هست مثلا بعضی از کشور هم مثل کشور چین قانون اینه که یک فرزن می داشته باشی یا فوقش دوتا بیشتر از این اجازه نیست در حالی که دستور خدا از هرچی فرزن میتونی داشته باشی بازی از کشورها قانون واس کردن که یک مرد نمیتونه بیشتر از یک زن داشته باشه زن دوم را نمیتونه بگیره انسان لازم نیست این ببینید هیچ کسی حق نداره این قوانین بر اساس بر خلاف دستورات صریح قرآن مجید هستند الان یک کشوری کافری مثل چین اگر دستور میده قانون دستور خود این کافر هست غیر مسلمان هست از او هیچ توقعی هم نیست اما یک کشور مسلمان نمیتونه که بیاد قانون وز کنه چنان قانون هایی که این قانونهاش برخلاف قانون خدا و قرآن باشه علماء اون کشور دینداران اون کشور باید بر علیه اون قانون چی قیام بکنن بگه آقا اشتباه است مثلا در کشوری اجازه ندادن که بدون رضایت همسر دیگه همسر بگیره در کشوری مثلا برای زن سن تعیین میکنه از این سن مثلا از هیچده سال به بالا میتونه ازدواج بکنه از هیچده سال به پایین ازدواج بکنه این غیر قانونیه نخیر این, این قانون خدا نیست پس این قوانین وقتی که وز میشوند چنین اختیاراتی هیچ کس نداره که قانون خدا را تغییر بده بنابراین باید که دینداران بر هر قانونی که خلاف قانون خدا باشد مثلا یک کشوری تصویب میکنه در ادارات باید زنها حق ندارن با حجاب بیان باید سر لخت بیان یا در اماکن عمومی تو خونهشون حجاب میکنن بکنن در حالی که تو خونه حجاب لازم نیست بیرون باید حجاب لازم باشه لذا هر کشوری ولو که بنام مسلمان باشه، این نوع قوانین را میکنند، دینداران تبعیت نکنند و علما باید با این قوانین چی بکنند، مبارزه بکنند. هیچ کسی چنان ولایتی ندارد که حلال خدا را حرام بکند یا حرام خدا را چی بکند. حلال بکند. لذا الله می فرماید یا ایوها نبی وقتی که نبی اختیار ندارد دیگران جای خود دارند. یا ایوها نبی لما تحرم ما احل الله لک ای نبی چرا حرام میکنی؟ اون چیزی که خدا حلال قرار داده برای تو تبتغی مرضات ازواجک می تلبی رضایت هم را والله غفور الرحیم و خداوند بخشاینده و مهربان است. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم قد فرض الله لكم تحله ايمان همانا خداوند عز وجل لازم قرار داد برای شما شکستن قسمتون را والله مولاكم خداوند شما از کسی دیگه بیم داشتنه نه شما خدا را داری خدا حامی است والله مولاكم یعنی ولیكم و ناصركم خدا شماره یاری می کند هیچ چیزی شماره تعدید نمی کند و هو العليم و الحکیم و اون ذات هم دانا هست و هم کارهاش حکمت داره بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم به همسرش گفت که بکسی نگو خداوند می و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا این بعض می‌نویسد یا عاشه یا حفظه. وقتی که به صورت مخفیانه رسول الله گفت به بعضی از همسرانش سخنی را، یعنی گفت پیش تو باشه، به کسی نگی، اون سخن چی بود؟ علوسی میگه. فقّالَ لَبَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عند زَيْنَبَ. رسول الله گفت که نه من مغافیر نخوردم، من عسل خوردم پیش زینب، ولن آعود از این بعد من نمیخورم. و قد حلفت قسم خوردم دیگه نخورم ولی فلا تخبری به که احد هیچ کس را خبر نکنی من این قسم را خوردم به کسی نگی خب وقتی که او گفت فلم ما نبعت به وقتی خبر داد اون همباغش را هویش را و اظهره الله عليه خداوند اون مسئله را ظاهر کرد بر پیامبرش یعنی خداوند به پیامبرش گفت که همسر شما اون حرف خصوصی شما رو هم به هم باغش گفت بعدا رسول الله از اون همسرش گفت چرا اون حرف را گفتی به فلانی او تعجب کرد او فکر نمی کرد که نس آمده مثلا عایشه را پرسید که تو چرا به حفظ گفتی من بهت گفتم به کسی نگو عایشه با خودش فکر کرد حتما من که به حفظ گفتم حفظ حتما دوباره به رسول الله گفته اما چیزهای دیگر هم گفته بود که خداوند اون چیزهای دیگر هم به پیغمبر گفت ولی پیغمبر اونها را به روخش نیاورد نخواست که بیشتر از این شرمندهش بکنه عرف بعضه و اعرض عن بعض وقتی خداوند از اون اخبار خبر داد و اونها را برای پیغمبر ظاهر کرد بعضی از اونها را معین کرد برایش یعنی بهش گفت و اعراض کرد از بعضی دیگر را بهش نگفت فلما نبأها به وقتی که پیغمبر خبر داد اون همسرش را به اون اخبار قالت من انباك هذا کی کسی به تو این خبر ها را داده یا رسول الله قال به من خبر داد به من حفصه نگفت کی گفت به من اون ذاتی که از هر سخنی از هر حالتی خبر دارد علم دارد و خبر دارد اون ذات به من گفت العلیم خبیر به من گفت لذا متوجه شدند هر دو همسران رسول الله که اشتباه کردن نباید این کار رمی کردن اینجا خدای تعالی به این دو همسر رسول الله ترغیب میده به توبه اینت توبه الله اگر شما توبه بکنید بسوی خدا برگردید خب این بهتر برای شما چرا؟ فقط سقط قلوب بکنید این جواب نیست اللت جواب الجذاب جواب مقدر فهو خير لكما اگر توبه بکنید بهتر برای شما چرا چون فقط سغت قلوب شما خدا از دل شما خبر داره دل های شما تمایل هم داره سغت یعنی کج شد متمایل شد دل های شما به توبه دل تو اما اگر از این به بعد ادامه بدید هم دیگر را حمایت کنید برای رسول الله و انت ظاهرا علیه اگر شما هم دیگر را پوشتیبانی کنید بر علیه پیامبر بازم ضرری نیست پیامبر زیاد دارد حامی زیاد دارد کی حامیش فَإِنَّ الله هو مولا همان الله مولای اوحاس الله حامی اوحاس وجبریل جبرائیل حامی اوحاس وَصَالِحُ المؤمنین مؤمنین صالح ابوبکر عمر عثمان علی اینا همه حامیش هستند پدران خود شما حامی وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ بقیه ملائک بعد از این هامی هستن همه حمایت میکن از رسول الله لذا شما پس توبه بکنید اینجا بود که این دو نفر این دو همسر رسول الله به اشتباه خودشون پی بردن توبه کردن از رسول الله مذرف خواهی کردند. اما خدا تعالی بیشترم تذکر داد به پیغمبر گفت عصا ربهو یعنی وعده رب هست امید به معنی چیه اینجا وعده رب است. انطلق کنن اگر پیغمبر شما را طلاق بده ان یبدله ازواجا خداوند تبدیل بکنه برای او همسرانی خیرم من کنن بهتر از شما یعنی وعده خدا که اگر شما را طلاق بده خدا بهتر از شما برایش انتخاب میکنه بهتر از شما در چی وصفی مسلمات که فرمانبردار باشند مؤمنات از دل مؤمن باشند قانتات تابع باشند تایبات توبه کننده باشند عابداتن عبادت کننده باشند سائحات یعنی روزگیر باشند روزه گیرنده باشند صیبات و ابکارا هم صیب هم باکره باشند ببین این هم تشویقی است برای توبه یعنی شما اینطور باشید، مؤمنات باشید، قانیتات باشید، ثایبات باشید. چرا این را عرض می کنم به دلیل اینکه خداوند از برای بهترین پیامبر خودش بهترین زنها را انتخاب میکنه. جه خود خداوند فرموده و اولمای از روی این آیه گفتند اگر از هایی که خداوند برای او انتخاب کرده کرده بود های بهتر بود، مؤمن تر بود، مسلم تر بود، قانع تر بود، او خدا اونها را انتخاب میکرد برای پیغمبرش چرا؟ غیر از اینها انتخاب نکرد؟ چون بهتر از اینها نبود. بهترین زنها همین هستن که الله عزوجل برای رسولش، برای پیامبرش انتخاب کرد. لذا خدايتعالی را ترغیب میده سوی این اعمال که اگر پیغمبر شما را طلاق بده آبدتر از شما روزگیرتر از شما تابعتر از شما و مؤمنتر از شما خدا انتخاب می کن. پس مؤمنتر از اینها نیست یا ایها الذين قو قوا و واهليكم نار بعد از این که بحث همسران پیامبر بود خدای تعالی خطاب میکنه به همه مؤمنان که شما مؤمنان تنها به فکر نجات خودتون نباشید به فکر نجات همسرانتون باشید، فرزندانتون باشید، دخترانتون باشید. نگذارید اینها به جهنم می رواند. از عذاب جهنم اینها را نجات بدهید. توجه داشته باشید یک پدر، یک برادر، یک همسر. مسئولیت دارد مسئولیتش زنها مقدار زیفتر هستند زنها ساده تر هستند و زنها احساساتشون بالاتر هست زود فریم می خورند لذا باید مراقب زنهای خانهش باشه امروز متاسفانه تعهد نسبت به زنهای خانه کم هست دلیلش اینه که می بینیم امروز فساد زیاد شده امروز در فضاهای مجازی زن ها زیاد هستند که خودشون را به نمایش میگذارند به بدترین وضعیت فجیع ترین وضعیت اینها آیا پدرانشون برادران با غیرتشون با ایمانشون شوهرانشون خبر ندارند یا خبر دارند اما غیرت و ایمان و همه چیز از بین رفته که زن همون طوری که در جاهلیت اولا بود در جاهلیت اولا چی بود؟ در جاهلیت قبل از اسلام زن خودش را به نمایش میگذاشت گذاشت جاهلیت قرن بستی اکم هم همینه در اروپا الان های مدی گذاشتن که زنها بهترین لباس و شیکترین لباس و بلا نسبت بدترین آرایشات را می میان خودشون را به نمایش میگذارند که کی, کی زیباتر هست؟ امروز بسیاری از زنهای مسلمان در همین بلاد ما در این فضاهای مجازی بهترین لباس، بهترین آرایش، بهترین وضعیت خودشون را میگیرند و خودشون را به نمایش میگذارند، لایو میگذارند، صدها و هزاران جوان منشینان این را تماشا میکنند. و چه فسادی، چه بی بندوباری میشه. اینا زنان مسلمان هستند. اینهایی که خودشون هم به فساد گرفتار شدن صدهای دیگر را به فساد گرفتار می کنن اینها دارن هم خودشون را و دیگران را برای این جهنمی که خدای عزواجل در این آیه بیان می دارن آماده می کنن. کجا هستن پدران باغیرت کجا هستن برادران باغیرت کجا هستن اون مردانی که الله عزواجل از اونها در قرآن تعریف می کند لذا ببینید قرآن به مردها چی خطاب می کند؟ يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان قو أنفسكم واهليكم نارا شما خودتون را و اهل عیالتون را از آتش حفاظت کنید اون آتشی که وقودها الناس والحجاره اخگر اون آتش زغال اون آتش هم انسان ها هستند هم سنگ ها هستند یعنی اون آتش را شعله را انسان شعله ورتر می کنه ببینید شما و اهل و عیال شما تو این آتش نیفتید ببینید که از این آتش خودتون را حفاظت کنید علیها ملائکتون غلاغون شداد بر اون آتش ملائکی هستند سخت خوب شدید یعنی تند برخورد می کنند هر کسی که تا حرف بزنه می تو دهنش لا يعصون الله ما امرهم ما يؤمرون ان نافرمانی نمی کنند ملائکه اون چیزی که خدا به اونها امر کرده نافرمانی خدا نمی کنند و يفعلون ما يؤمرون و انجام می دهند اون چیزی که امر می شوند یعنی امر خدا را کاملا دستورات خدا را انجام دهند لذا شما از این جهنم خودتون را نجات بده. اون جهنم اصلش اینه که این جهنم و عدت ما در قرآن میخانیم این جهنم برای کافران آماده شده ولی متاسفانه بسیاری از مسلمانان وقتی که از نظر سرکشی به اوج سرکشی و تمرد میرسن از نظر فساد به اوج فساد میرسن به اندازهی به اوج میرسن که باعث فساد دیگران هم میشن باعث به فتن گرفتار کردن دیگران هم میشن اون وقت اینها هم باید برن با اون کافران قرار بگیرند اون وقت هر چه معذرت خواهی میکنند کفار میگن خدا اشتباه کردیم غلط کردیم خدا میفرماید وقت معذرت خواهی اینجا نیست معذرت خواهی جایش دنیا بود اشتباه کردیم باید در دنیا اشتباه اشتباهی اشتباهیتون را جبران میکردیم معذرت خواهی میکردی اینجا جایش نیست الله میفرماید يا أیها الذین کفرو ی کسانی که کفر کردید راه کفر را پیشه گرفتید راه جهنم را گرفتید لا تعتذروا اليوم امروز شما معذرت خواهی نکنید امروز عذرتون را نخواهی چرا انما تجزون ما کنتم تعملون جز نیس که شما جزا آنچه که شما عمل کردید اون چی که عمل می کردید جزای همون اعمال و کیفر اعمالتون را داریم می چشید چیز اضافی نیست و جایش اینجا نیست که شما الان آمدید باید تو دنیا این کار را می کردید بعد از این واقعا این آیت باید تکان دهنده باشد واقعا این آیت یک انسان یک مسلمان غافل را باید بیدار کند قطعا بیدار میکنه بی هر کسی به خدا ایمان داشته باشد هر کسی باور داشته باشد که این کتاب خداست، او تکان می خورد او بر می گردد. لذا خدا تعالی اون کسی را که تکان می خورد، اون کسی که پشیمان میشه از فساد خودش اون کسی که از فتنه گری پشیمان میشه خدا تعالی او را میگه توبه بکن. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان توبوا إلى الله التوبة النصوح توبة کنید رجوب کنید برگردید بسیع الله برگشتاری نصوح نصوح یعنی با دل پاک و صاف اما توبة النصوح در اصطلاح چه توبة است توبة النصوح سه شرط دارد توبه نسو سه شرط دارد که انسان باید این سه شرط را رعایت بکنه توبهش توبه نسو میشه یک انسان پشیمان بشه اولی شرط توبه نسو اینه که انسان پشیمان بشه انسان نادم بشه که عجب اشتباهی کردم پروردگارم را رب مهربانم را رنجاندم این همه اون لطف به من دارد، احسان به من دارد، من دارم تمرد میکنم سرکشی میکنم او را ناراضی میکنم لذت توبه نسوه اینه که انسان پشیمان بشه و پشیمان در صورت انسان میشه که فکر بکند فکر بکند که خدا چه لطفی به من کرده و چه توقع انتظاری از من دارد و من چقدر حامی شیطان هستم و برنامه شیطان را درم به پیش میبرم من بجای اینکه رحمان را راضی بکنم شیطان را دارم راضی میکنم دشمنم را اون دشمنی که سوگن خورده که مرا را با خودش به جهنم ببرد لذا اول انسان پشیمان بشه نادم بشه و به این چیزها فکر بکنه دوم بعد از اینکه نادم و پشیمان شد رجوع بکنه به خدا پیش خدا بره در دربار خدا بیفته به سجده بیفته بگه خدای من اشتباه کردم رجوع کنه به خدا اینقدر گریه بکنه اینقدر عشق بریزه اینقدر خدا را تضرر و زاری بکنه که مطمئن بشه خدا قبول کرد این شرط دومیش دو هست شرط سومی سو توبه نسو اینه که دوباره اون اشتباه را مرتکب نشه دوباره اصلا و ابدا اون کار را نکند اگر دوباره کرد معلوم میشه توبهش نسون نیست این توبهش مسخره هست خیلی ها هستن هر روز توبه میکنند روز بعد دوباره میگه نمیتونیم خودمون را کنترل بکنیم. اینها توفیق ازشون سلم میشه خطر هست که اینها هر روز به بعد مسخره گرفته هی توبه میکنند دوباره میشکنند که خدا تعالی خاتم اینها را خراب نکند اینها به بد جوری از این دنیا نروند لذا این هست توبه نصوح ببینید بی حدیثی در این رابطه هست معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ از رسول الله پرسیدن این روایت را علامه آلوسی در تفسیرش آورده قال معاذ ابن جبل یا رسول الله مت توبه النصوح معاذ ابن جبل گفت یا رسول الله توبه نسو چیه قال این سه شرط توش است یک عین ند علی الذنب الذی اصابه بنده بر گناهی که مرتکب شده پشیمان بشه دو فیعتذر الی الله ما زرت بکنه و عذرش را پیش خدا ببره پیش خدا ببره بگه خدا من اشتباه کردم غلط کردم خطا کردم ببخش ثم لا يعود الیه كما لا يعود لبن الى الظرع سپس بگناه بر نگرده دوباره این گناه را مرتکب نشه همان گونه که شیر وقتی که از پستان خارج میشه دوباره بر میگرده امکان نداره شیر که از پستان گوزفند خارج میشه دوباره شیر وارد پستان نمیشه همچنین این دوباره وارد این گناه نشه لذا این تفسیر توبه نسوح است از عبداللہ ابن محسود هم این روایت شده لذا الله می فرماید یا ایوها الذین آمنو اے مؤمنان اے بندگان با ایمان توبو الاللہ توبتن نسوحا توب بکنید رجوع کنید بسوي الله توبه نسو یعنی استه دل با پاکی دل و صافی دل عصا ربکم ان سمری توبه نتیجه توبه عصا ربکم عصا وقتی که نسبتش به رب باشه ارز کردم معنیش چی میشه؟ وعده عصا ربکم وعده رب شماست اگر شما توبه بکنید ایو کفر عنكم سيئاتكم کفار بگرداند دور بگرداند از شما سیئات شما را ببرکتی توبه گناهان شما را پاک و ویدخل لکم جنات تجری من تحت الانهار پاداش دوم داخل بگرداند شما را در اون جناتی که جاری هست زیر درخت ها و قصراش نارها یوم لا یخز الله النبی والذین آمنوا معه الله تعالیٰ اون روزی که قبل از ورود به جنات هست روز محشر اون را ذکر می فرماید که در اون روز که خداوند مؤمنین را میبرد برد از میدان محشر می برد یوم لا يخز الله النبی روزی که الله عز وجل نبی را زایه نمی کند رسوا نمی کند والذین آمنوا معه کسانی که ایمان آوردن با پیغمبر یعنی مؤمنین را که همرا با رسول الله است اونها را خداوند زایه نمی کند نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانیم چون بعد از حشر سرات است پلی سرات است این حالت حالت پلی سرات بعد از حشر است نور آنها می دود یعنی جلو جلو هست دوان دوان هست بین ایدیهم جلویشون و به ایمانیهم راستشون یعنی از هر طرف اونها را نور محاصر کرده اما این مؤمنین می که ما بعد این نور کم نشه نور خاموش نشه دعا میکنند مناجات میکنند یقولون ربنا اتمم لنا نورنا میگویم بار الهات تکمیل کن برای ما نور ما را لنا ما ببخش این دعای دومیش ببخش ما را انك على كل شيء قدير این علت از تو بر هر چیزی قادر هستی خدایا بر هر چیزی قادر هستید لذا خدای اززوجل اون نور را کامل می و اونها را می‌بخشد و وارد بهشت می گرداند خب تا اینجا دستوراتی که در رابطه با حفاظت زن و فرزند هست و حفاظت همسران هست دختران هست که انسان باید اونها را داشته باشد الله تعالی دستور دادم بعد از این مضمون مضمون جهاد است که موضوع اصلی سوره هست تا آخر سوره میرود الله تعالی می فرمد یا ایها نبی بجاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ای نبی جهاد کن با کفار با منافقین وغلظ علیهم بر آنها چی باش سخت باش یعنی بر اونها غلزت کن شدت کن سختی کن اونها را به حال خودشون رها نکن و ما جهنم جایگاهشون جهنم است و مصیر جای رجوع بسیار بدی هست و یکی از صورت های خابندن فتنه ها هم چی هست؟ جهاد هست جهاد با کفار تمام فساد و فتنه را کفار یا منافقین بعضی ها ایمان ندارند به ظاهر میگم ما مسلمانی میں اعتقاد ندارند گاهی شنیده میشه که از اینها از به همین افراد گفته میشه بترس از خدا بترس از عذاب خدا میگه کی گفته کی گفته عذاب کی گفته جهنم من اصلا جهنم را قبول ندارم خیلی هستند که اصلا زندگی بعد از مرگ را قبول ندارم میگه اینا داستان هستند قدیمیا گفتن هنوز شما به زبان هایتون دارید پس این بظاهر مسلمان و بچه مسلمان این منافق این ایمان ندارد الله فرما با اینها بجنگید و بیس المصیر مرجئ بسیار بدی هست ضرب الله مثلا للذین كفرم امراه نوح وامراه لوط این جنب یک تمثیلی هست خداوند جل این مثال را برای کفار بیان میفرماید که وقتی که کافر باشد انسان حتی نزدیک پیغمبر باشد فرزند پیغمبر باشد همسر پیغمبر باشد او جایش جهنم هست پیغمبر حتی او را نمیتونه نجات بده بیان فرموده خداوند مثالی برای کسانی که کفر کردند یعنی برای عبرت کسانی که کفر کردن امرأة نوح و امرأة لوت زن نوح و زن لوط کانتا تحت عبدین این دوتا زن همسر دو تا بندگان ما بود. از بندگان ما بودن من عبادنا صالحین. دو بنده از بندگان صالح ما. یعنی یکی لوت بود، یکی نوح. این دو تا همسرشون با اونها خیانت کردن، فخانتا همان. خیانت کردند. ببین منظور از خیانت چیه؟ خیانت فساد اخلاقی نیست. اصلا کسی چنین تصوری نکند. بلکه منظور از خیانت، خیانت دینی هست. فدین لفظ زنا تفسیر جمل گفته. خیانت خیانت چیه؟ دینی هست. یعنی ایمان نیاوردن، راه کفر انتخاب کردن. ولی خیانت بی افتی نیست. به چه دلیل بی افتی نیست؟ به دلیل اینکه اگر خدای ناکرده زن یک انسانی فساد اخلاقی داشته باشد این فساد، این عیب، این ایراد متوجه کی هست؟ متوجه همون شوهر است، کمتر تا زن است. هم شوهر اون زن سرفکنده هست هم پدر اون زن هم برادر اون زن هم فرزند اون زن در صورت که فرزند داشته باشد همه سرشون پایین هست اما اگر زن ضعف دیگری داشته باشد اون ضعف اون عیب به شوهر بر نمیگرده به پدر بر نمیگرد مثلا نماز نمیخوند به عنوان مثال کفر میکنه اصلا راه کفر را گرفته میگه من خدا را قبول ندارم این ایبش بی شوهر بر نمیگردد بلکه تنها صورتی که زن بی افت باشد فساد اخلاقی داشته باشد ایبش بی شوهر بر میگردد پس خدای تعالی برای پیامبرانش که پاک ترین انسانها سن ناپاک انتخاب نمی کنے. امکان داره زن مشرک باشه کافر باشه ولی زنش بی افت نمیتونه باشه عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما می فرماید ما زنت امراه نبی قطو زن هیچ پیامبری زنا نکرد به همین خاطر علما ما محققین در مقابل کسانی که میگوین یوسف زلیخا را عقد کرد به شدت رد میکنند میگن اصلا چنین چیز امکان پذیر نیست چنین چیزی اتفاق نیفتاده یوسف زلیخا را عقد نکرد زلیخایی که انکاره بود و دعوت به سوی عمل بی داد چطور چنین زنی بی را خداوند زن پیغمبر پاکی بگرداند خداوند می فرمید و و و و اونی که ناپاک ماره مرد ناپاک اونی که پاک مال مرد پاک پس مراد از این خیانت خیانت دینی هست خیانت اخلاقی نیست فساد و فحشا نیست اللهم ابن كثير نوشته در تفسير ابن كثير ليس المراد بقوله فخانتاهما في فاحشة منظور انكي قفته فخانتاهما فاحشة غري نست بل في الدين منظور چي هست؟ ديني هست فإن النساء الأنبیاء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمت الأنبیاء بخاطر حرمت الأنبیاء بخاطر جائقاه الأنبیاء زنهای انبیاء از فاحشگری معصوم و پاکند هرگز فساد اخلاقی نداشتند وجود نداشته چون عرض کردم این عیب به شوهر برمیگرده یک دشنامی هست هم در عربی هم در فارسی میگن در یوس بلا نسبت اینجا تو مسید هستیم به چه کسی میگویند؟ اون کسی که زنش همین کاره باشد سرش را پایین گرفته پروه ندارد غیرت ندارد زنش پس این زن اگر این عیب را داشته باشد این عیب کی برگشته به شوهر بنابراین فخانتا هما فی الدین یعنی عقیده شرکیه داشتن فلم یغنی, یغنی انما این دو غمبر بزرگوار نتونستن دفت کنند انهما از آن دو زنشون من الله شیعن یعنی از عذاب خدا چیزی را عذاب که آمد هر دوتا غرق شدند یا گرفتار عذاب شدند قیل ادخل النار در این دنیا به عذاب گرفتار شدند در آخرت به اونها گفته میشه ادخل النار معا داخلی هر دوتون وارد جهنم بشید همراه با بقیه کسانی که وارد میشه پس ببینید وقتی که انسان راه کفرا بگیرد حتی اگر پیغمبر از نزدیکانش باشه نمیتونه اون را نجات بده. اما وقتی که انسان راه ایمان را راه عمل صالح را بگیرد حتی شوهرش شوهرش فرعون زمان باشد بزرگترین فرعون روی زمین باشد هم خدای اززوجل به این نسب و به این شوهر نگاه نمی کند این زن را به بهشت می برد لذا خدای تعالی مثال دو زن مؤمنه را بیان می فرمان. یکی مریم يكي آسية بنت مزاحم رضي الله عنهما وعليهما السلام ان دوتا راه ايمان راه تقوى راه خدا ترسي راه خدا را گرفتن آخرت شنرا آباد کردن ومريم ابنة عمران التي وضرب الله مثلا للذين آمنوا بيان مي فرمایت الله عز وجل مثال وصفتي مثالي کسانی که ایمان آوردند امرأة فرعون زن فرعون را خدا مثال بیان می فرماید اذ قالت رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنة زمانی که انسان فرعون این گونه دعا کرد رب ابن لی بار اله ها بنا برای من پیش خودت بیتن فی الجنه خانه در بهشت و نجنی من فرعون و مرا نجات بده از فرعون یعنی از شر فرعون و عمله و عمل فرعون مرا نجات بده فرعون را شکنجه می فرعون خیلی میزد زد دست و پاش را بود و بر پشتش بر شکمش میزد زد شانلاق او دعا می کرد ونجنی من القوم الظالمین بار الهی مرا از قوم ظالم نجات بده خوب دعا اشرا خدا ذکر کرده قتن خدا اجابت کرده که دعا اشرا ذکر میکنه خدا نجاتش داد شهید شد بعدن وارد بهشت الله شد و مریم بنت هم همچنینین مثال دومی که الله بیان میفرمایید مریم دختر عمران التی احسانت فرجها اون مریمی که عفت خودش را حفظ کرد، شرمگاه خودش را حفظ کرد یعنی با افت زندگی کرد با پاکی زندگی کرد زنی که با پاکی زندگی می کند محبوب خدا قرار بگیرد. فنفخنا فيه فيه من روحنا الله میفرمای ما دمیدیم در آن از روح خودمان یعنی روحی که از طرف خدا آمد خدا اون روح را در وجود مریم چیکار کرد به کرد فرشتات به وسیله جبرائیل و بكلمات ربها این مریم کلمات رب را یعنی کلمات الهامی پروردگار را اون که خدا به او الهام کرده بود در دلش القا کرده بود اون کلمات را مریم تصدیق کرد یعنی ایمانش کامل بود و کتبه و کتابهای رب را مریم تصدیق کرد تورات بود قبل از اون کتابها و صحف موسی و ابراهیم و دیگه کتابها را تصدیق کرد و کانت من القانتین اون بیان عقیدش بود، این بیان عملش است. و کانت من القانتین و مریم از زنهای طابع بود، از زنهای فرمانبر پروردگار بود. لذا بهترین الگو برای خواهر مسلمان، برای دختر مسلمان این زنها هستند که با پاکی زندگی کردن و خدای عزواجل از اونها تعریف و تمجید میکنند صدق الله مولان العظیم.